وشه‌ین گاه به نام او مرز ده باشاین دی باشایش که می‌ره و مسواح‌های پیروز گر باود مینویس و رشن آشدها شناوتر آورای مصداق آدم هشم و هویش دم استیوش دا استیوش دا مايی هتشاایی ویش دایه شم هشم و هویش دم استیوش دا استیوش آسم به خویه ایش تماستی اوستا عصتی و اشتایشم بر مزدی اسنوز رات اوست و, و براد شهینای و چه چه چه چه آین چه و چه چه شناو ترا یچا فراسست نهایی چا سراوش ایشش ایشی واتو برد سراو جنو فراودت گی تی رشناوش رزیش تی ارستاو تصدف راودت گی تیاو برد دت گی تیاو شناو ترا یشناو یچا و هماو یچا شناو ترا یچا فراسست نهایی چا یا تاو هو وریز عوتو فرام امروتی یا تاو راتو ششاو چی تا را عشب و بیزوام را تو اهورم مزدام عشبنم عشی راتوم یزمیده زرتوشترم عشبنم عشی راتوم یزمیده زرتوشتره عشانو فرابشیم یزمیده همیشه سپنته عشانام یزمیده عشانان ونکوی سوراست پنته افرابشا یزمیده است و تو مناخ یا و چاپانو تمم رتبام یز میده یا اتو تمم یز اتنام هنگنوش تمم آشیرت ما وایینه سانس تمم جغموش تمم شانو آشیرت و رتو, رتو یز میده او شهینه مشابه نم آشیرتوم یز میده او شام سری رام یز میده او کم یز میده شوید نیم روت اسبان فرامرم نرام فرامرم نزو ویرام یا خاطر ویتین ما نایی تید اوشانگ هم یزمئیده زوین رنجت اسبام یا سنت اوی حب تو کرش ویریم زام عوام اوشان یزمئیده اهورم مزدام اشبانم اشیراتم یزمئیده وحو منا یزمئیده اشم وحیشتم یزمئیده شترم ویریم یزمئیده سپنت هم ونگویم اور می تیم یزماید برجیم شبانه مشایداتوم یزماید برجاه ونگئوش آشای برجاه دینا یاو ونکو یاو مزدی اسنویش ماونهایی این رتبه اسنویچ با ما یه ماونیم چه شبانه مشایداتوم یزماید سراوش مشی مراز دم برتر آو جنم فراودت گیت م راتوم یزماید رش رزیشتم مور از هشتمیز مییده اشتاتم چف رو دت گیت هاوم وری دت گیت هاوم یز مییده دواما اوترم محور مزدا پوترم ش بنم شیدتوم یز مییده از اوترم حزایی برسم شی افرست در تمشبنم راتوم یز اپام اپم نپتورم نیریم سنگم نریم خمدم دامویش اوپ منم یزاتم یزمیده ایریست نام اوروانو یزمیده یا آشانو نام فروشی یا رتون برزنتم یزمیده یی مهور مزدام یا آشی آپانوتم او یا آشی جکموکتم او 20 باد فروظ راتو اشتری یزمیده 20 بچه وارش ترش یاوت نیز میده وارتم چه وارشم نه ینگه ها تا ماهت یسنه پیتی بینکو مزده اهو رو بیتا تا تا چا یان کام چا تانس چا تاوز چا یزم ایده یتا اهو ویریو اتا را تو ششا چی دا چا وینکه اوش دست دام نینکوش یا اتنه نام انکه اوش شترم چه هورا یا یم دری گویو دادت باز دارم یتا اهو ویریو اتا را تو ششا چی دا و اندکیوش دست دام نیم خوش یا اوت هنر نام اندکیوش مزداهی شترم چه حورا یا یم دریگو بیاد داد چه بامم چه جس چه تا آشم و ایشته مسیوشتاه عزتی، ایشتاه مايی هیاتش هایی و ایشتاه یشم. اه مايی رایشه قاره نسچه، مايی تن و درد را خواستم. تن و باز داره، اه تن و برترم. اه مايیش بروش خاطرم، اه مايی از نام چی تراز این تیم؟ اه در قوم، در قوجی تیم. اه مايی و ایشته ماو شاونام راو چینگ ویس و خاطرم. آسم و هواش دماسی وش دالستی وش ده دایشم. هزینگرم به شزا نام بای وری به شزا نام. هزینگرم به شزا نام بای وری به شزا به و جسم که <theema> جسم یابن که مسدام ام ایوتا اشتا و, و روزای برترق نی ابر زاو تای بن انتیاس چا وبرتاو تو تووال شای خزا تای زربانه یکر زربانه و استمسوشتا است و استر ماوی یتاشال و استا یشان بیروز باد خرو حوی جای نماز ماز بیروز باد خرو حوی جای نماز ماز بیروز باد خروح وی جای وقتینه مازی اصنان اشن هویش و هو و ایشت دمستی وشت آستی وشت احمایی یت اشعی و اشتای اشن پی از دانم شاست مندان کام باد ایدون باد ایدون ترج باد شان. اشن با هویش و هو و ایشت دمستی وشت آستی وشت احمایییت اشعی و اشتای اشن